در این تا فرون بایتش میدونم دو باید تاکه هشتان رو دمانی کرده میدونم سلطه بسید، باید نوهم خب، نظر بر قرآی توفیق و یامن دولت شاها نظر بر قرآه توفیق و یعنی دولت شاه هست، بده کام و حافظ که فعال بختیاران زد. عرض کردم خیلی مده اینجوری در دیوان آفز کمه. یعنی مثلا یه بیتی، اینجا سه چهار بیتی، با باز عرض کردم که شامنصور آدم خیلی خیلی مهمی بود و آدم شجاعی، آدم خیلی بروی جنگ خیلی جانانهی هم با تیمور کرد، خیلی شجانه و کشته شد و تیمور خیلی حتی گفته آرزو میکنم که چه بچه میداشتن با احترامات نظامی و اینا چیز کردن خلاصه به هر حال آدم است که این چه منصور که طرف توجه قرآه به معنی همون سوال دیگه قرآه کشیدن قرآه یعنی ما همین که بگیریم که به صورت های مختلف ممکنی چیز کنه به هر حال مطلب اینه که یه کاری به چند نفر، سه نفر، پنج نفر، هفت نفر، دو نفر باشه یکی شما انتخاب بشه این انتخاب رو به صورت تصادف در میارن مثلا اسمشون مینویسن سلوله میسنن و میزنن توی زرف یکی در میارن یا چون می‌دونن می‌هند بزن مثلا تو سفره یا رود هر طرفی اسم یکی رو می‌مسنن کدوم رو با اینسه یا به صورت‌های دیگه اون آدمی که اسمش در میاد این آدم نیست که بختیار دیگه آدم نیست که موفقه میگه نظر بر قرآه توقیقه و بر یام یعنی خوجستگی و فرکندگی و میمون یعنی خوجست و پرخند این حیگوون هم توش میگن میمون برای اینکه حرکاتش تو حرکات بامزه است و آدم خوشحال میشه و خوشش میاد از حرکات این رو شادی میشه و هم دلیللم اس میمون یعنی فرخنده و کجاستی بر شیاز که شادی میگن اصلا بهش به میمون میگن شادی با. به دلیل هم که شادی میشه و من یه قصده در ای دربا در یکی از در یک کتاب کتاب بنام بدایه البقایه خوندم که ناچارم اینه اینجا بگم با اینکه معروف نیست با اینکه از اجایب چیده شده شده در زندگی میخوندم اون مؤلف و اون کتاب تو بسیار آدم بازه اقویه می که من یک جوونی بود خیلی جوون زیبایی جوون رهنای پرازندهی بسیار با اطلاع بسیار با با سواد، خوش و من اینو خیلی دوست می‌داشتم این جمعون رو به علت برازنگی بشیمان یه بخش نیدم که این میچاره سر گرفته بیماری دق به قول خودش سر گرفته و روز به روز زعیز میشه و نراحت میشه من میدونستم که کسی که سر گرفت هر حال چیزش مردی و از یه مدتی چیش ماه یه سال به تناسب قدرت بزنگی که داره بالاخره فاید بمیره دیگه دیگه وجود ده دیگه من نمیتونستم تصور بکنم که این جوون به این زیبایی و به این پرازندگی و به این خوبی بعد همجور آب بشه مثل موم بعد بمیره این از که گفتم برای اینکه که این منظره دردناک رو نبینم و هر روزه رو شد گفتم سر رفتم میگه من رفتم و رفتم به شهرهای دیگه که فکرم به جای دیگه و اینا و چند سال، واقعاً سه چهار سال نبودم بعدم فکر میکردم چرا چطور شده باشه و اینا و که حتما مرده دیگه و فکر زیگه فکرم که دیگه مرده و مرده, مرده, و مرده, و مرده و برگزار که شده و تموم شده و رفته و این برگشتم به شهر خوردم از چهار پانز سال میگه بودم و همهش تو فکر این بودم اینا یه روزی تو خیابون داشتم میرفتم دیدم مثل این که این همون آغاز هست و چله و سرحال و وضع خیلی خوب و قرطب رو دیدم فرد تو توی گفت تا تو چطور شد چی بود خیلی خوشحالم می توانیم برم چطور شد از این بیماری وحشتنک میجاب پدید که نگفت داستان من غسله ای بشیم ولی من وسط بگم میگه که منو شستم یه جایی و گفتش که حقیقت هست که همه اطبا از بالجی من چیز شده میگه و به من گفتم که تنها چیزی که میتونی یه خورده عمرتو رو درازتر این هست که تو باید بگردی و جاهای خوشعب و هوا بری و چیزهای بخوری و فکر نامناسب مکنی و فکر این بیماری رو از طلاات بیرون کنیم و خلاص آسایش خسییال داشته بشه این ممکنی مقداری اون بهطور رو همینکاری که در آزایشگاه هم کردنن قبل از اینکه این سر و مایسی وات در آزایشگاه اینا رو میگه میذاشتن سنگ کردیم که اینا وزشون با گردش و چیزز و تفریح و هوای خوش و غذاهای خوب و اینا ازشون. گفت به که این دیو من هم ویدیو باغی بود و بساطی بود و چیزی بود این حرفا و میگه که باید یه روزی ما رفتیم در یه باغی یه باغمونی بود یه میمونی داشت این میمون خیلی حرفت باوزده کرد و خیلی چیز بود فرهنگیز بود کاراشو خوب بود نه من به این باغونه گفتم که تو این میمونو به هم بفروش بنا با این که خیلی علاقه داشت به این میمون برای اینکه من شاید این موجه به شفایی من میشه یا بهترشنواره هم میشه پروخت یه ما هم تو هم باق بودیم یا ببخشیم باق بودیم باق بودیم میمونه بود و اینا من هم اونجا استراحت میکردم و این میمونه بود و بموزه نه، بعد باق بود. چیز کرد رفت یه مرگی گرفت و کشت و پر کرد و آورد گذاشت تو دیگ رو که بپذهباره من گفت آش بله به فارسی عرض کنم که بعد خودش خواست بره به یه کاری گفت که گفتم <تصفيق> که با خونه من گفتش که من میرندم ولی یک کاری این میمون بالا دیگ دینو آتیش بزنید و شما نگران نباشیم این آتیش رو نمیذاره خاموشو مواظب این آتیش هست و شما استراحت. شما وقتی ما قابل دیما میمونه اینجا آتیش میکرد و دیوی نگاه میکرد بعد من دیدم که مثل اینکه مراقب منه ببینه که من خوابم برده یا خواب نبرده و مثل که کاری میخواست بکنه من تا خواب رختن من میگه منم چوز کردم چشم چو همان گذاشتم مثل اینکه خوابیدم و دیدم که میمونه بعد از اینکه خوب اتمینون پیدا کرد که من خوابم دست کرد توی گیک و مرگه رو در رو برد که بشین رو بخورد بیگه الان من خیلی ففریک کردم از این کار این که این میخواست کلا سر رو هم بذارو خب کرده من این رو بذارو زینا بیگه من از گیه چشم مواظب واضب حرکات این بودم که سارم بامزه بود ناگهان دیدم یه قلیباجی قلیباجش مشگیر میگن چیز از نوع نوعان شکاریست مرگ خیلی برنده یا هست مثل بنز بزرگتر از تبوتها مثل خودشوینه خاد بهش میگن قلیباج هم میگن مشگیر میگن اسمایی دیگه هم داره خیلی همدوار چیز خیلی هیوان تشه نیست گفت این همچنی که این چیزاری گرفته بود و داغ بود و چیز میکرد. نه یه ادفه یه قلیباشی رسید این دوچه هر این ساعت بردش پرد. اینکه میمونه نشست فراعت مثل مصیبت زده ها که این عطودی در رو که مثلا خودش میشین و بخورینه ادفش گرفت رفت و این خیلی ناراحت. یه مدتی ناراحت رو میگفت منم میخندیدم اینا. بعد گفت که دیدم بعد نیست یه مدتی میمینه اومد رفت یه بوته خواری مثلا یه بوته گل خیلی یه چیزی که مثلا نیم متر قربش بکنه دیدم که رفت خودش رو با این بوته پنهان کرد و فقط برای تو تو چیز قیرمز هزه شید تو دایره قرمز هست که مونده گفت اون رو هوا کرد ها ها اونجا نشست نشست به هوای این که قلیباجه فکر کنه که این گوشتی تو هایی اتفاقاً هیلشت مؤثر واقعشم میگه هیلشت مؤثر واقعشم دو قلیباجه ما که دو روی زد و دید که مثل گوشت مخمی روی کنار اوتر میگه آمد که این گوشتارو بگیره میمونه به سرعت برپرید و این گرفت و کلش کند و برد مرگر روز کند که من به قدری اصلا از این حرکات خندیدم که داشتم میموردم اصلا گفت چیزی نبود من خیمونه بمیرم که این همجبا با پر اینا هم هفنا کلش کند و برد که بفزه درش و درشو گذوشت به افریقه ریتواله میوندارن میمیرمزتند باقونه احمد گفت چیا آقا شو چی شده چگاه گفتم ولی این شاکار آقا رو برو باید خیلی بله گرفته کرده تو میگفت که بعد از این که من قصه رو به اینا گفتم اینا اصلا یه حالت اینا نمیتوستن خودشون زب کن بعد بهش گفتن که تو این ممنون رو باید و گفت خیلی <coughs> <coughs> مهمون من فروخت و من با این مهمون بودم این انیس و مونس من بود و این حرکات بامزهی که این کرد نوجه این شد که به کلی از دو سه ماه تمام آثار سل اینا اصلا در من مخ شد و از بین رفت و من تب تب میکنه من, من مسلول وقتی بیماریش من عاله تب میگه تب من قد شد و حالا دوست بروست بهتر میشه که باید تو دوست سالی به کلی حالم جا و سالم شدم از برکت وجود این میمون برحال به این دلیل میگهد میمون و این قصه تو کتاب نام بدایه البقایه در مسکو چاپ شده به یک بار دیگه بنیاد فرهنگی ایران یه باغی به نام فراگینسکی ها گشت بنا یه شخص ایرانشناس ایران شهرشنس روسی اینو چاپ کرده غلط چاپ مسکو چاپ شده خیلی بعد یه دور دیگه در بنیاد فرهنگ اینا تطویش گرفتن درست کردن یه چاپ ابرمند خیلی خوب ازش شده و خیلی گسترهای با و چیزهای خیلی خوب و خیلی بحث کتاب هست مقدار زیادی یکی از اون هم همین که از داره میگه نظر بر قرآه توقیق و یمن دولت شاه هست یعنی فرخندگی دولت شاه به کام دل حافظ کام دو معنی داره یکی دهانه یکی مراد و آرزون دل وقتی اینگه به دهانه مراد دریست و اینجا خطاب شاه منسوی میگه بده تا همه دل حافظ که فعال بختیاران زد. یعنی فعال نیک زد. برای توی. چه که این بختیاران یا بختیاران؟ من اون دیگه که چون دوتا ساکم در فارسیس تخت گفتنش میشه بختیارش. برای اینکه حسومتر درستش. ولی هم بختیاران. شهنشاه مزفرفر شهنشاه شاهنشاه, شاهنشاه. شاهان شاه یعنی شاه شاهان اضافه ساه شاهان قاعده در اضافه این است که وقتی دو تا اسم باشه به هم اضافه بشه اسم اول بشن گرم مزاف اسم دونمون بشن گرم مزافان این حالت هم بهش میگن جنیتیف یا به آلمانی گنیتیف یا به فرانسوی جنیتیف حالت اضافه. رو و یه ا که بهش میگن کسخه اضافه. تو این به جای آخم انگلیسی یا به جای دوی فرانسی هست و معمول این است که اول مزاقی بعد کسری اضافه بیاد بعد مزاخندت بیاد اگر یه برد جایی نعوض بشه این نمیشون بگن اضافه مغلوب یعنی گشت رو شده در اضافه مغلوب کسری اضافه برگشته میشه شاه و شاهان میشه شاهان شاه و وقت تن میشه sammen طور. دو شنبه شه. اه سیلاب سیلاب یعنی سیلا. آب سیل. کبوتر بچه یعنی بچه کبوتر. مثلا صفتو مبسوط هم باشه همین طور میشه مرد نیک نیکش که یه جلو میشه نیک مرد. دیگه چیز نمیشه. شاهنشاه یعنی شاهو شاهان. شاهنشاه مظفر فار اگر کلمه عربی باشید معنی یه فراد یک عبارت بریم که حتما به سواه شنیدید ترفت و یه لغمی داره حضرت امیر المومنین علی حیدر کررار که کر یعنی حمله، فر یعنی فراد کر رو فر یعنی حمله کنم و گریز کنم جنگ و گریز کر رو فر بگینام اگه عربی بشه اگه فارسی باشه همین کلمه و همین تشریف به معنی در حیقت تحیید است. یک کلمه هست در عدستایی خوهره نه خواره نه این, این, این بابش از نور باب محدوده به نه یعنی این که با... کسانی که میخواستن به مقام موبدی یا به مقام سلطنت برسن اینا باید یه انگیختگی از جانب خدا یا رسالتی از جانب خدا داشته و خداوند چیزی برای اینا میفرستاد که فرقه فره یه ایزدین همین خوانه نه بر فارسی شده فر و فره فرقه یه ایزدین بر چیز خیلی در, در شانان فردوسی کزون فرافان بکار هست این شده نه نه این عربیه به عنوانی حمله کرده اون کر فارسی هم تشدید نداره هم اصلا اون پارسی این عرای عرض کنم که این فرقی ایذدی رو یه امر معنوی است اسم معمیز ار من تایید الهی است، اما برای این اینکه برای مردم کاملا مجستم کنن بردستان های دینی زرداشتی آمده است که وقتی جمشید ناسپاسی پیش کرد و خلاص میگن که یا گفت که خداوند همه شما هم منم یا دروغ گفت دو تا راه داشت. به هر حال فرقه ایزادی در سن بعد به صورت مرغی از او جو داشت. یک بار این فرقه ایزادی رفت و این وقت مهر او رو گره. یک بار دیگه واس فرقه به صورت مرغی از او جو داشت. رفت یک عرشه گرشاس گرشاست پهلوان شکست نفذیره و جز این جاویدانانه و گفتن که الان در خواب و وقتی که زهاک از پور دموان این بندشو پاره کرد و آمد و فساد و خونویزی بسیار در دنیا برپا کرد بعد گرشاست از خواب بیدار میشه و او رو میکشه یک بارم فره ایزدی از این جدا شد و پیوست فریدون که بعد از بعد از دوران زه فریدون توانست بیاد و زه های که بگیره و دربند کنه و خودش به پادچاهی بریزه این فره پادچاهی، فره پادچاهی، فره ایزدی، این است برای موبدی هم همینطوره و فریدون در سلطنت فریدون میگه که موقعی که فریدون پادچاه شد جز سخنانش میگه منم گفت با فره ایزدی هم هم پهلوانی و, همم، همم، همم، همم و هم هم هم هم هم هم هم پاقشاهی و موبدی و هر دو با تایید الهی باد همچنین جهان پهلوانی تو اونم یه فرهی از نظر پهلوانی باید دشته جای دیگری که باز اشاره به این شده در داستان اردشیر و اردوان پنجم اردشیر باباکان محسس سلسلی ساسانی این اردوان گرفته بود و زندانی کرده بود دختر اردوان عاشق عردشید شد و در یه جشنی که اومده بیرون و سوار عصب شدن در رفتن با دختر عرد وقتی فهمید بریم دنبال اینا, اینا دارن میرن که شورش کنن یاقوی بشن کنن اینا به تاق رفتن دنبال اینا رستن به یه دهی پرسیدن که شما یه زن مردی، دختار و فساری، به این نام به این نشون و صورت چرا دیدیم؟ یه ساعت پوش اینجا وقت یه دونه میش سفیدم پشتشون میدونید رفتن به دیگه، باز پرسیدن گفتن دیدیم، گفتم بله میم ساعت پوش اینجا راحت می شدن و یه نیش سفیدی، خیلی نزدیک به اینها پشتشون می رفتن بعد، باز پرسیدم احل دیگه گفتن که بله یه پسری بود، جوانی بود، سهار از دختری پشتش نیست و برتر که اصلا اینا نشسته بید و میگه برگردیم دیگه ما دسترس و عزوشی نداریم این فرقه ایزدی بود و عزوشی پیوست و دیگه پادچاهی از چیزت رفت اینا رو که مجسم میکردن به صورت حیبون، به صورت مرب یا به صورت نیشون برای فهم مردم بوده و ایلا فرقه ایزدی اون تعییب ایلا و فر پادشاهی که اشاره بود و همینجا شهنشاه مزفر فر این فر اون شجاع ملک و دین این لقب شجاع الملک مثلا این لغبش یا شجاع دین بوده شجاع ملک و دین منصور که جود خنده بر عبر بحاران زد خنده بر عبر بحار خیلی بخشنده است دیگه و بارون به هری نه میگه جود بی او ابر وارد ماخرو میکه خنده زاد بشینیم از خرش لطفا بله بله اصلا هیچی نیست تشقیق عبارت از اینه که در زبانه فرنگی در خطای فرنگی در همینا وقتی دو تا حرف دو تا حرف مستهان مینوسن مثل دو تا اس مثل دو تا دی مثلا تو انگلیسی هست برد عربی و فارسی یه دونه می نویسن این تشریدی که می ذرن این است که این دوتا آن بایلا هیچ ولی دیگه نداره من علامت فقط در که درد تکرار شده است یه دونه نیست دوتا از آن ساعت که جامعه می به دست او مشرف شد زمان ساخر شادی به یاد میگساران زد اول ارز بکنم که این سلامتی که بعد میدارن جام میگن به سلامتی شما به سلامتی شما نهی که نخوشی میره ولی سلامتی نمیره طبیعیست الکل الکل، اگه بیاره مرزه سلامتی حتما نمیره این علت داره این کار علتشو بعد توضیح میدم برایم ولی قبل از اینجا اون علت توضیح بدن عرض می که در ایران قدیم تا 200-300 سال پیش جامشونو که برمی داشتن می گفتن شادیشون این هم در کتاب مثل سمک ایار کتاب زیاد استعمال شده هم در خود حافظ میگه گه نغز گفتن بطه ترسا بچه با فروش رد شدید می که شادی روی کسی خورد که صفایی داره زمانه ساقر شادی به یاد می سارات ما میگفتیم و می شادی میاره شادی موقت میاره دیگه که دروح نیست اما سلامتی از دوران قبل از انقلاب کبیر فرانسه به یادگاره یه زندانی داشتن در پاریس در فرانسه زندانی به نام بستیگیه که از خدیر در فارسی ترجمه شده بستیگه این ای در فرانسه خونده میشه ای. لانا خونده نمیشه در اسپانیا همیندیز وضعی هست این بستی خونده میشه ولی از قدیم در تیرون، در ایران، در زبال فارسی، این زندان معروف بوده تا رو باستیل و در ایران این باستیل محروب، ولی بستی درست، و هر حال این زندان، زندان بود که کسی که می رفتی این زندان دیگه بعد موردهش میاید یعنی فراموش بود، دیگه کسی که نفستن دیگه هیچوقت رنگ آزادی رو نبینن، نفستنشون و انقلابیون فرانسا اولین کاری که کردن بستی رو خراب کردن و الان در پاریس میدونی هستونم بستی به اپرای خیلی قشنگی هم ساختن دوره میتران ساخته شد اوپرای دوپن پاریس این در هم جای سواقه بستی هست حال در این زندان که می رفتن بودن تا بمیرن ولی گاهی یک کسانی بودن که زیاد رو امروی اونجا دولت هم دوست دادشونت زنده بشن بر اینکه ممکن بود که هم صرف وجود در اونجا شهری تولید کنیم اینا رو خیلی راحت بر که از شهرشون راحت بشن شباب یه قاله نونی بود و یه بطری شراب میدادن دادن در فرانسه بجا اب این شراب از بطری آب ادیان از اون طرف و با اینکه ادیان مال خود فرانسه است ولی اینجوری میارن گرونه و از از فرانسه تا اینجا کلی تعلق میگیره برای در خود فرانسه یه بطری ادیان جرونه تا یه بوتی از بعضی شرابهایی که سر میز میخورن توش میگن وندوتابل شراب میز دوست خیلی ارگون و خیلی رایج میخورد شب زندانی یه بوت شراب داشته به یه اورسنج قالبمی اورس نگاش زندانی جمحاستان راحتش کنم یه عیزایی میزدن به شرابشو، رو این هیچ خیال باردن نداشته بگو و به و همین حرفا فردی صبح بیزن حاجی رفت درموش کنم بعد که چند بار این کار تکرار میشه حس میکنم که این کار دولاتی دیگه و چند مدتی یه بارم افتحال به نام یکی از اینا میفته میشینن به هم همه هم تهدید بودن این شطور داره خونه هر کدوم از نام مکنه بخورن میشینن کمیسیونی میکنن و به خودشون میگن خب اینو یه سم میزنن به این شراب میزنیم با اون میخوره و این سم مثلا فرض کنید که ده سانتی گرمش نورتلید یا مثلا نیم گرمش مثلا ترسونید که مرگ نوش یا استریکنین یا امثال اینا مثلا سی سانتش مثلا میکشواره ملوم همیستون بوتیکی هست هر کنه یه بوتشرب دارم میشه عوشتون خالی میکردن همی تو هم دیویست زندانی بودن دیگه دیویست بوتشرب خالی میکردن دیویست بوشتی اون یکی که مصموم بود تصدیم شد به دیویست بنابراین دیگه سمش کشنده نبود یعنی مهدار خیلی کم میشد دوز, دوز ماده سمی طوری بود که دیگه بعد که ورنیشتن میگوستن به سلامتی. یعنی این فردا هیچ کس ولی فردا هیچ کس از مزمونی چاپ نخواهد مورد این خیلی شعر البته انسانی هست و خیلی خیلی چیز مردمیه و این به این دلیل این یه جمعه جهانی کنید و الله الکل از اون سلامتی نمیاره که میگن به سلامتی از این از اونجاست و یادگار اون حادثه لله شادی زمان ساغر شادی ساغر پیمانه شراب بندن. به یاد می گساران زد گساردن خیلیست که به معنی شرید کردن شرید کردن کسی و فقط با دو چیز در زبان پارسی بکاری یکی می یا باده که می یا قرم من غیر از این دوتا ندیدم این سهل با کلمه دیگر رو به قهم و می گسار و با گسار ساغ یا مردم رو از آن می دهید که قهم من به دو گسارده شد و گساردم که عرض کردم یعنی شرکت دادن اشخاص در میخارگی در نوشیده می یا شریک کردن مردم در قهم خود که هم دو ساعت است که درد میکنه با او و سوط میشه از آن ساعت که جامعه می به دست اون مشرف شد مشرف اسم مفعول است از مصدر تشریف تشریف یعنی شرف بخشیدن به کسی خلعت پادشاه رو بهش گفتن تشریف یعنی این آدم که این قبار و این جامعه رو بهش میددن اینو حیثیتشون موردن بالا دیگه ارزش اجتماعشون موردن بالا اینی که اون, اون, اون چیز چیزو اون لباس رو بهشون تشریف چه خوب است تشریف شاه خوتن یکی از بزرگان روشنزمیر امیر خوتن داد تاقی حریر چه و چه بعد بفرشید و بوسید آنجا زمین که بر شاه حالا مزار آفرید چه خوب است تشریف شان کتان وزن خود ترجنده خیش تشریف منیه لباس نه نمی‌گم که میگه تشریف بیارید خونه ما یعنی شما وقتی خونه ما میاد شرف آمی بالا محسن. بله <تصفيق> آل امیر به مشاوره اول تشریف بگم بعد بسیم مشاوره دیگه بله پس تشریف تشریف بیارید خونه ما یعنی شما بیایید خونیم ما که ما شرفمون بالا بریم. مشرف شدن به عکسه. یعنی من که میام پیش شما شرفم میره بالا. میگم مشرف شدم خدمت شما. یعنی خدمت شما که رسیدم من شرفم رفت بریم. میگه جامعه به دست که اون مشرف شده. یعنی وقتی جامعه این دستش شرف این جامعه رفت بالا. از آن ساعت که جامعه می به دست او مشرف شد زمان ساقر شادی به یاد میگو سارن زد ز شمشیر سطرفشامش افشاندن به معنی پرتاب کردن و پخش کردنه است که اجزا داشته بشه. مثل دانه دانه فشنده، تخم، افشنده این پخش میکنن می کنن، گنگون بود یا هایی که می کشاورز کشاورزه بکران پخش می کنن، این دانه افشنده حالا، سر یعنی سرها رو یکی که می زنه پخش می یعنی این وقت، سریه در،, در جنگ نه، که سرها رو، مثل همون دانه نی افشانه دار در داشت. ز شمشیر، زفر آنروز روز درخشید که چون خورشید انجمسوز تنها بر هزاران زد انجم جمع نجم نجم یعنی ستاره جمعش میشه انجم سوختن انجمسوز سوختن اصطلاح نجوم وقتی که ستاره ای از افق میره بیرون یعنی از چشم ها پنهان میشه یا اینکه در اثر تابش یه ستاره نوران مثل خورشید، این دیگه از دیده ها پنهان میشه میگن این ستاره محترق شد یعنی ستاره سوخت ساید میگه که برای آمدن چوب مجلس سپند جای نمون اسپند میرسن دو آتش و که میرزن این میتره که میپره بالا دیدید که میپره بالا صدا میکنید طرف میگه من تو من تو مهیده است اصفند از جاشت بلند شد از رو گل و آتیش آمدن گفت مجلس برای آمدن چوب مجلس سپند جای نموند سوختگان قدردان یک تیگره هست ستار سوختگان ستار یعنی باعت بره. یعنی کسی که ستاره این نداره خورشید خرشید انجمسوست یعنی خورشیدی که ستارگان رو نه رو از چشم پنهان میسنه این سوختن اصطلاح نجوی خورشید بعد دیگه هزاران ستاره بر آسمانه خورشید یکی ولی تنها خود میزنه بر اون هزاران ستاره و همه اینا رو میسیدونه یعنی دیگه میگه می این چمشیر سرفشان و شاه منصور هم همینطوره زفر و پیروزی اون روزی از چمشیر رو اوی درخشید برای اینکه چمشیر برق درخشش دارید میگه که اون روز پیروزی از چمشیر سرخشان اوی درخشید او درخشی که خودش مثل خورشید و انجامسوس یک تنه زد به هزاران سپا دوام و عمر و او به هاو حضرت حد ایدل که چرت این که دولت به روزه روزگارم سن که تو دوام عمر رو پادچاهی او رو بخواه حقیقتن اگر کسی باشه که اسم یفشو بود بر این سلسله آل نظهر ازش یکی شاه شجاعه و یکی هم شاه منصور ویلا اون شاه یحیاخ که حافظ یه قضاون برمت او داره ای که بر از پت مشکین نقاب انداختی لطف کردی سایی بر افتاب انداختی غذر بسیار قشنگی هم هست میگه نسرت الدین شاه یهیا تهش وز براوی سید دل برگردن هم زنجیر زور چون کمند خسرو مالک رو ها بنداختی خسرو نسرت شاه یهیا آن که مالک را از دم شمچیه چون آتش دراه ولی ظاهرا آدم مزخرفی بوده ایشون آدم خسیسی هم بوده و یه مدت هلکران یعز بوده و خواهد جحافظ خامش یزد و دلگیر میشه از دست این رو بر میگرده یزد معروف بوده که زندان اس، اسکندر دارم جه زندانی بنای بوده میگه که دلم از وحشت زندان سیتندر بگیره. وقت بروندم ها تا سلیمان براقم ملت سلیمان اشاره به فارسی برای که چند بار به با شما گفتم که افسانهای جمشید با سلیمان به آن شده در تخت جمچید رو فکر کردن که این ملک سلیمانه و تخت جایگاه سلیمانه خیلی زیاد این, این امیرتگی جمچید سلیمان خیلی زیاده انگوشتاری سلیمان اشاره بود انج... انگوشتاری جمچید میکنن چون جمچید هم یه انگوشتار داشته که با این نگینش برای چیزو که دنیا وسیلی میشه که اون نوارای فردوسی من لاغو بگیشتون خورده تالا این شباحت موجب موجود که از دورانهای بسیار قدیم حتی از پیش از اسلام و دوره ساسانی قصه های جمچیف و سلیمان به هم پاتی بشه میگه که رخت بر و تا سلیمان که سلمان برانه از یه جا دیگه حافظ روی قطعی میگه شاه هرموزم ندید و شاه هم ندید و میزوخان صد لطف کرد شاه یزدم دید و مدهش کفتم و هیچم نداد اون شاه یه یاد مسته سلطان زین راویدی مهمه آدم های بودن که تیمور هم کلاک همش میکن فقط شاه شجاع و عجل تبلیی مرد چه منصور هم در جنگ شجاعانه بسیار افتخار آخرینی و باقی بقای های شهزادی هم حال مذفر که تیمور یه جا کلاکی میکن بر دبه دوام امر و ملک او بخواه از لطفه هم ای که چرخ این سکه دوبت به دو روزگار هم زدن حالا سکه که سکه رو با قالب و با چرخ می زدن چرخ قالب فولادی بوده چیز می بعد ورق زر یا نقره رو می لای این دوتا نور به این قالبه رو می و اون می این با فشار می زده می از هرمی اگه برای سکه زدن این فلک هم چرخ دوش بیان چرخ اینگه چرخ این سکه دولت رو در دور روزگار به نام روزد این چهار قشنگ بازی تا دولت بقام امرو ملک او بخواه از لطفه ای دل. که چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زد بابا, بابا. چه شعر قشنگی بعد خب یه جوان مرد غصابی اینو بخونی اینو بخونی چیر نبید؟ عرض کردن، عرض یعنی بخشش گفتم عبر و بحار خیلی بخشنده هست و او رو و کرد دود و خنده بر عبر و بحار همسد خب کردن کاب از آن ساعت که جامعانی ساعت ساعت لحظه بخش. ساعت, ساعت بسیار معنی داره. یکیش روز قیامت. این نزلزلت هست. ساعت شای اون عظیم ساعت این روز قیامت ساعت منی اون واحد چیزان هست واحد اندازه و شبان روز و 24 ساعت تقسیم ساعت این موقع هم می‌کردم ولی، حبید، سپرد ولی از خیلی که از موقع اینا تقسیم به روز شده به 24 ساعت که بر برمبنه 6 بوده اصلا چونکه ریاضی خونده خود می‌دونید که عداد من گفتم این قراردادیه که وقتی الان نمیزمی ۱۰۰۰۰ یه یک می‌کنید، نمیزمی، نمیزمی، یکی رو یکیم چهار، چهار تیک. خب است؟ یکی رو یکیم نهار، نهار چون هم تو ده تا. یکی رو یکیم نهصد، چون هم یکی هزار؟ یه گاروش نمی‌دارم. یشت هیچی نداره. گاروش. الان سه چهارمی میخواد بگی منی می‌سی؟ یعنی سه چهارمی درست. یه‌ای بخواد چهارمی منی می‌سی؟ اگه با قواعدی عادت نمی‌سی حالا وشی و چهارمی رو اینجوری می‌سی دیگه. اینجوری چهار سی می نیست چرا؟ داره که این برمرمه شیشه سی شستم این سی عادت کردیم که این چهار سی می نیست یا چهار می نیست می خونیم را هم بدونه که فکر اصلا که این با اون فرد داره چرا اونجا نینه اینجا نینه اونجا این قرار داریم یه روزگاری فکر داریم که اعداد با 6 خیلی راحتر قسم میشن. چون خود 6 به 6 و 2 و 3 قابل قسمته زرد دارد دو به 2 و 3 و 4 و 6 قابل قسمت دوازده زرد دارد دو, و دو به 8 و 6 و 4 و 3 و 2 قابل قسمته و بعد همه هفته دو دو اگه برسه اینکه هفته دو دو تن و عدد هفته دو و هفته دو ملت و جنگ هفته دو ملت همه را حاضر بنه و هفته و دو دوت هم جمهوری اسلامی توی اون سر یکی دن بوان بای بو اینا هفته و دوتا که نبودن که یا بیشتر بودن یا کمتر بودن ولی عدد هفته و عدد مقدسه برای هفته دو دو به یک به دو به سه به چهر به 6 به هشت به 9 و به دوازده و به سوچهر قرار این، اینا همه برای مبنای شیش تقسیم دایره به سی ست چست روز به ویس چهار ست ساعت به دقیقه به شست تانیه این برای میدار که فکر میکردن مبنای شیش مبنای خیلی راحت تاریجه بعدها مدتها بعد توجه کردن که احشاری یعنی مبنای ده, ده دهی راحت تر و با یه ممیز یا با سه خیلی راحت میشه به ده تقسیم کرد آسون و ب... برمبمای ده خواهدان الان الان که کامپیوتر اینه البته من این رو بلد میسهم این ها یه برای بازی عددیات بلدم من چیزی از حتی سرم نمیشه الان بر برمبمای هشت از همه چیز داریم. بله همون برای اینکه هشت دو ازار تا دو ازار تا دار کعبی کعبی توست مرنای دوی از همه آسون پشت. این همه قرار دود. قرار دود. و ساعت هم همینطور. ساعت اون وقت به همین لحظه هم, هم هست. از آن ساعت که جامعه به دست اون شعرف شکر نیز اون لحظه از اون وقت. هم. و جا عجله هم لایست. اخیرونه ساعتن اگر را هستی وقتی عجب رسید تو هر هم معنی مهلت است اصلا عجل معنی مرگ نیستن تعجب کنید. عجل معنی مرگ نیست عجل معنی مهلت عجلشون رسید یعنی مهلتتون تموم شد میگه وقتی عجلشون رسید نه یک ساعت کم میشه نه یک ساعت زیاد میشه محسوب نیست کم تا یه ساعت کم و زیاد میشه با تاخیر ساعتم ساعتا ما واقعا درمون محسوب این نیست که فقط یه ساعت کم زیاد نمیشه کمتار از یه ساعت ممکن کم زیاد میشه خیلی مخصوصش نیکه حتی یک ثانیه هم کم زیاد میشه همون لحظه که خیلی کنگی آدم میشه بنابرای این ساعت من وعنی لحظه است اصلا وعنی اون ساعت ما میشه این هم نمیشه خب حالا کشی بخونیم تو بخونیم دازم دازم که آهی بستاز آن تباهیم شیری زفان که با اون رتل در آن ترازن. در آسان جانان در سرقوان نهادن گلواند سربرندی در آسمان تبایدن فتی خمیده ما ما بر چش دشمنان کی در این در. از این چمان تو این وقتای دوش طب بخن بخن. ما ما بر چشم کشمان چی از این کمان ترانید در خانه لطف بازی اثار اشکبازی جانه مقانه هم با مقان تبانید در بیش را نباشد نزل نزل نزل سرال تو نزل از این هست برگ سرال سکن بازی تو توزیندم دارم مزد سرائه سلطان مایی در آن تباندن اهل نظر دو در یک نظر ببادن عشق تو اول داغ اول عشق عشق تو اول دولت دری سرها به دین تخیل بر آستان پوان کرد عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است چون جمع شد معامی یک بیان پوان کرد چون زهدن سلامت زد تو بین عجب نیست گذراف تو باشی صد کاروان پوان کرد حافظ حافظ به حق قرآنی که از شید و زرب بازار به که از شید و, شید و باشد که بلوی عیشی در از این جهان مرد بسیار اینو یه ذره کمی استراحت کنیم باید شده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 بر آستان جانان گر سر توان گل سر سرگلندی بر آسمان توان زد بد خمیده ما سهلت نماید اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد بر خانقه نگنجد اسرار عشق بازی جامعه می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد نزل سراغ سلطان. ما این کهن کاتش در آن توان زد. اهل نظر تو حالم در یک نظر ببازند. عشق است و دا و اول بر نقد جان توان زد. گرد دولت به خواهد دریبو سرها به دین تخیل بر آستان تمام زد عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است. چون جمع شد معامی دو بیان تمام زد شد رهزن سلامت گلت بین عجب بین اگر راه زن تو باشی صد تاروان تمام زد حافظ به حق قرآن صد شید و زر بازد باشد که گوی حیشی در این جهان تمام زد خزال بیشترش جنبه ارفانی داره البته و یه مقداری هم اون تن اصلی اون زمینه اصلی دکتر حافظ که مبارزه با ریاکاری و اینا و یکی از برگش های در این کار است که به در میگه دیوار گوش کنه یا گاهی به خودش میگه اون چه باید به دوستان بگه به خودش میگه و یکی از دوستان من تعریف میکرد میگفتش که من یه مدتی رفتم. اون بازار رو با بازاری ها رو نام یه طرف کلیمی داشتن و این جماعت کلمی که خب بیزنسمنهای خیلی خوبی هستن شام اقتصادی خیلی درجه که دارن رفتش که خیلی چونه میزدن خیلی اذیت میکردن به طوری که پدر آدم در میمد ولی وقتی که قط میکردن و مطلب رو هر جزی که چونه میزدن درست که میشد و حساب میتونم قرار میذاشتم سر قرارشون سر ساعت و سر دقیقون سر جیز یک چونه من نادرستی از بعد از ضمن کاراش میگفتش که یکی از برشایی که اینا به کاریم برن در کارتون زدن اینا این است که حیب خوش با می ده. به جایت همین، من فدر سخته، من فلان شده، من چنین شده، من چنان شده،, شده،, شده رو به این کار میکنم؟ این در حقیقت، طرفه، اون تا به خودش میگه. حافظم هم همینطوره، حافظ این خرقه که داری تو ببینی روزی که چه زن نرز زیرش به دقا بکشاید. این حافظ و عبق قرآن که از شید و زرق بازای، باشد ای تیگوی این جهان تمازد. این روش دایمی خاجه هست به هر حرفی که میبینه که اگر در حق دیگران بزنه عرض کنم که ممکنه که عذیت بشه، سرصدا بشه، تکبیرش کنن، آزارش بکنن به خودش میگه که دیگه کسی چیز نه داشته ولی خب بلاخره کسی که آقل باشه که شنونده باید آقل بشه میفهمه که این دیگه راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد اینجا راه به معنی آهنگ موسیقی با مقام موسیقی است زدنم به معنی موافتن فقط. البته میدونید که گفتم می دفعه توی اون چیز چه مستی است ندانم که, که رو به ما ورد که بود ساخی و این باده از کجا ورد یه بیت داشت چه راه می این مطرم مقام چناس که در میانه غزل قول و عشناورد گفتم اونجا این راه رو به هر دمانش خواهجه استفادی کرده. یکی راه زدن یعنی راهزن دوست خطاب طریق و مرادش معنی مجازیش بوده که معشوق و دلبرد دل راه دل دین آدم دل و دین از آدم میر و بایر اسطلاح این میگن راهزن دل شد راهزن سلامت زلفتو این یه راه زدنه یکی هم زدن راه یه زدن یه آهنگ. اینجا فقط هم یکیه راهی بزن که آهی بر ساز آن توانذر یعنی آهنگ موثری یه آهنگی بزن که بتونیم که درد دلی ثبت کنیم خودمون یا آهی بر اون ساز بزنیم شعری بخوان که با او رتل گران قمان داد اولا به میده که شعر همینجور همراه موسیقی بوده از اول به, به موسیقیدان میگه که تو یه برای بزن مقام بزن بعدا میگه شعر یه خون که همراه اون موسیقی که بشه با او رتل گران بزن رتل اصلا وانی پیمانه است بعد هم پیمانه خاص بوده است که باز مقدارش تغییر می کرده و من اصلا به طور کلی نفتی رو در باره واحدای وزن و واحدای حجم پیمانه ها و براتون بگم او این است که مثلا داریم من من واحد وزن تو ایران خانم لمتون که استاد فارسی بود در دانشگاه لندن، بازنشستش توی یه مدتی هم با وسط محتباتی سفرات انگلیس بود در ایران و رئیس دپارتمان زبان فارسی بود در دانشگاه لندن، رئیس دپارتمان بسیار بنافوزی هم بود به طوری که هر وقت ازاد خارجه تصمیم میخواست در ایران بگیره، یکی از کسانی که اونجا دیرکتیب میدهد نظر میخواستن، خانم لندن این کتابی نوشته که توصیه میکنم اکیدن بهتون که همتون این کتاب بخونیم برام مالک و زارع در ایران به قدری این محتاله به دست اول درجه یک در این کتاب هست باور کردنی نیست من یه نکته بهتون بگم میدونید که سوالها من در چیز کار میکردم در مجلس کار میکردم در مجلس می میدن از همه نقاط ایران دوره‌های قدیم‌تره هم اغلب اینا مالک‌ها بزرگ و فعودال از این حفا بودن طبیلی‌ایست که نیش از همه بعض کشاورزی می شد و به اصطلاح همه اینا عقل که ایران اصلا مملکت کشاورزی است علا کار نداریم که هنون سنعتی هم که نیست گفتن سنعت هم که یکی از وزرهای خود چون جفت ایران تو داغون شد بعض اینقلاب حالا به همه مستلیب که با این حال، سالیان سال من میشریدم که برای ایران یک قانون کشاورزی که بشه در سراسر سر منبکت اجرا کرد قرار گذاشتن امکان نده به دلیل یک دلیچم خیلی روشنه ناهیهی گره مثل گیلان و اون حاصل خیلی مزندران گیلان، گرگان، ترکمنس عراق اینجاها که در کمال و آب فرابرون، زمین خوب، وضع خوب یک نواهی هم داره که مثل مثلا چلات نادری که تو نایه کوهستانی باید با کلنگ این زمین رو بکنن و دن گنده بباشن تخنی چهار تخنی چهار تخنی شیش این بهره مالکانه اونم برن پیز حساب کتابه این دوتا تا با هم اصلا امکن پذیر نیست یا راه های مثلا بوشه من راه های بوشه رفته بودم سیزده عید داشتن گهنوانشون براو میکردن و بعدش تمام این سوخته اصلا ای آب، بدلخ. خب اینا هر کدوم ابو هوای خواست بعضی وضع خواست داره که این اصلا نمیشه اصلا قابل چیز نیست که بشه ایمان این خانم تمام مناطق ایرانو مطالعه کرده و تمام اینا رو با دقت و جوش مطلب نوشته مطالبی درجه اول و یک ترجمه بسیار بسیار خوبم شده آقایی که دوست بنده است و هم دوره وقتی که نبوده فضلتر از بنده همین دو سری رو گرفته دکتر منجیر امیری عرض کنم که این ترجمه کرده سلام در امریکا با واسطه فرنگی بوده خیلی خوب ولاده و فارسی خیلی خوبی فارسی خیلی خوب بلده ترجمه خیلی پشنگی کردیم این مالکوزاری در ایران رو و با بانگاه ترجمه نرش کتاب هم چاب کرده انگلیسی همه هست میکنم یک زمینه داره این کتاب یعنی یکی که نه ده تا زمینه ده اپ اندیکس داره بستباه یکیش درباره باره باید وزنی خانم لامتون در روز مثلا 17 تا من مختلف اسم بیده. که من اُصلا بروجه اُقاره و ازش من فلان جا اُقاره من فلان جا اُقاره من فلان جا اُقاره و کعتا شما الان می‌دونه یکی من خود تحرونو که معروفه به من, من تبلیز زهران من این بود از تبلیز اماده تحرونم بوده من تبلیز مادر سه ولی اصفهانی وقتی که من من که خودتون بشون من, من شاه و مادری شش من اصفهان. و بنابراین رتل هم که، رتل یه پیمونه که پیمونه بوده که کیم می کردن مثلا چوب و یا گندم و دانه ها و اینا رو گاهی رتلی یعنی پیمانه ای میفردن. ولی به دلیل اینکه جامعه جامعه یه نبوده، یعنی وساله هم نقل سریع نبوده و از سرسر سر کشور ارتباط سریع باهم نداشتن نابودی. ارتباط مفیدی محسوبی در نتیجه، دلیل می‌دهم که مردم می‌خوردن انسان خارج نمی‌شدی. بنابراین یه واحدی و از برای خودشون داشتن خودشون انسان بکنند خودشون کتاب بکنند خودشون می‌کشند خودشون می‌کنند. این است که سرماهر فرهنگی رن باز بکنید و کیوند راحتی چه قدری؟ که راحتی پیمانش معمولاً معادل مثلا فرض کن که من یه ریچی یا دلیچ، ولی به نسبت جهان مخالف است. برحال رت یعنی تیمونه، رت گران، یعنی بیمونه سنگیم و رت میگه حافظ برای مبالده، غیلا کسی رت شراب نمیخوره یعنی که رت مثلا مثل یه گل اینجا گران زدن یعنی شراب دید خودن من یادم از این تاریخ به حقی نوشته بود که سلطان مسعود در فلاندوز به شعب میشست و من الان درست یادم نیست اینجام که ندارم به حقی میخواستم بگم هفته بعد میانم اینجام تاریخ حقی اینجا ندارم دستانجلس دارم میگه سلطان به شعب میشست من یادم نیست ده من یا یه ده من شعب بود بل. از یکی از دانسیان دوره دکتری از مرحوم استاد ما مرحوم برد و زمان پرسید که این نگشته که این تهنان شراب می شود تهنان شراب برد فرمود که تا منش چه منی باشه؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> یعنی انخان این هست ولی که بیهقی مرد گذافگو و مفنویست نبوده حرف دیراب نمی زده پانوالین شاید آخوان این من مقداری بوده که میشده حساب بکنیم که میتونه مثلا دفته 24 ساعت اون باید چواب کنیم شد برس بوده گران یعنی پیمانه گران حالا میگه راهی بزن که آهی بر ساز آن تمام زد شعری بخوان که با او رتل گران تمام زد. این شعری بخوان احتمالاً با آواز خوندن شاید نباشی برای در اون مورد میگه بگیر. گفتن رنی آواز کنید. ساقی به نور باده برفت روی جان و مطر بگیر. یعنی آواز میده. سعدی میگه شب یا شم یا گوینده یا زیبای. خیلی زیادی. نظیرش خیلی زیاد. قدهی چند به نوش و غزلی چند بگو که قده نوش نگاه یو غزل می خذر سرک گوش اسفانیز من دوره ناصرگینشا رفت ماه رمزان ایستنم مشکین خوال تیز و در دهمه خوش بود و مرا خوش کن حال مجلس ها راست کن باده به ده به نه مجلس ها راست به کاسه که ماه شبال لال شد واعظ و مطرب بسترود آمد خوش مطربم به که سراغینده بود واعظ لال چه خوری قسته بدنامی پیشار نبی نترا مفتی ام نسته مراقازی خال ارز که قدایی چند بنوشو بستاقی میگه قدایی چند بنوشو غزالی چند بگو که قداه نوشنگاری و یا بوی غزال این معنیش این نیست که تو ملیس شراب برونه میشین که از کند قزل بساس بیم یعنی قزل با آواز بخونه خرابونه، شراباتش خیلی زیاده این که شعری بخوان من نمیدونم خوندن وقت معنی خوندن با آواز به کار میرفته یا نمیدونم نمیدونم بر, بر آستان جانان گرستر طوان نهادن و فانج سر بر آسمان طابت. اوران آستان و آسمان رو ببینید چقدر قشنگ ورده دو تا رو درستم سر اون جاهای اون یک کله بابزی کله اون هم پیش از اون کله آستان آسمان یکی پس معنیاش هم زد هم کاملات میگه اگر سر بتوان بر آستان جانان گذاشت سر شریف ترین عضو فبن و که سر به جای به جایی جای پایینی پسکی بذاره نشان کمال نشان کمال پروتنیه دیگه بر آسان جانان گرستر طبان نهادن گل بانگ سربلندی بر آسان طبان زد گل گل اصلا وقتی میاد در اول یه ترکیبی معنی اون گل نمیده گل گشت. یعنی گشت که اثر خوشحالی آدم بزن. گلبانک یعنی بانگ بلند بانگی که اثر خوشحالی آدم بزن. به سالی نه. گلبانک سر بلندی بر آسمان یعنی یعنی فریادی که آدم از سر افتخار و از سر سر بلندی میتونه برسه نو آسمان. بر آستان جانان گستر توان ندا. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توانست. آسمان یعنی چیزی گردندی. آس اصلا یعنی چیزی گردندی. و آسیاب یعنی چیزی که وسیله آب عب میگردی. که دست آس، دست آس یعنی آسیابی که به دست میگرد. خراس یعنی آسیابی که به خر میگرد. بله آس یعنی چیزی کردند، آسمان یعنی گردنده بر آستان جانان جانان با الفنون نسبت جانان رو انی معشوقه یعنی کسی که پیوند با جان آدم برید به جان آدم مر یعنی معشوق میگه اگر بتوان سر رو بر آستان معشوق گذاشت نهایت سربلندی آدمه نما گلدان چه سر بلندی بر آسمان بزان باد ته ما سهلت تو گر فکر میکنم این غزن مال غزل ما دوره سالخردگی حافظ و بلکه جانیم رهنمای ولی رشید سر نهادوی دلمندی جوانی چون چیزی نمیگه قابل نیست باد ته حمیده ما سهلت تو گر اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان تباید یعنی ما رو دستی کم نگیر این خمیدگی که هست چیز قریب است که تازه جوانی ز سر ریشخند مال جامیه تازه جوانی ز سر ریشخند گفت به تیری که کمانت بچند پشتش خنیده بوده بازه جوانی ز سر خند گفت پیری که کمانت به چند پیر بخندی تو به گفتی جوان شرخ تو را میزده هرد رایی <تصفيق> با گفت روزگار خودش مفتکی در وستی آب میزده تا راحت کنم که خب پیر منهنی با قط خمیده دیگه فکر میکنه که خب این دیگه باز اصحاست دیگه این کاری ازش ساخته میگه حصولش اینه قط خمیده ما سهلت با ما گرد یعنی به نظر دیگه ما دست کم میگیری خیلی آسون میاد قط خمیده ما در نظر در حالی که یه عمر تهجره رو پشت این باعث خمیده دیگی شده این کمونه که میتونه ازش به دو چشم دشمان ازم تیر رو می بعد به خمیده ما سهلت نماید. نمودن این نشون بدن. یعنی به نظر, نظر خیلی آسون یاد، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان کن. بله. تازه جوان زی سر رویش خالد. جو جوان میزه سر ریش خند گفت به پیری که کمانت چند پیر بخندید و پیر بخندید و به گفته جوان چرخ ترانیز دهد رای جامی در خانگاه نگنجد اسرار خانه خانگاه یا خانگاه همون خانگاه دیگه که معرب شده خانگاه یعنی جای توقف جای جایی مثل خونه شده خانگاه خانگاه مرکز صورتیه حافظ خیلی بینش رو میده که نیست اگر اون کتاب واجنمای حافظ که تمام کلمات حافظ درش شمارده شده داشته باشیم رو بهش روجو مثلا سی چل مارد سی مارد چل مارد پنجا نمیم چند تا کلمه صوفی آمده اینا رو بگیرید به شعرهایی که از نگاه کنید میبینید که بیشترش در تعریز و در کنایه زدن و در یا انتقاد شدید از صوفی هست صوفی نهاد دام و سر اخته باز کرد بنیاد مکه و خلق اخته باز بعضی چهار چرف بشکندش پیزه در کلاح زیرا که عرض صحباده و حل راز سووفی صوفی ار باده و انداز خورت میچشم و من اندیشه این خواب برام میچشم صوفی سرخوش از این دست که کچ کف کلاه، به دو جام دیگر از کف برود دست دارن. خیلی. همچکن نمی اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد، همچنلو علی و و رو و مظاهرشون همه خرقت رو بزنید، خرقت رو بینداز که همینجا میگه ما یک خرقه کانه داریم کنچه آتیست داریم. بر مقاوم خانقاه اون جایگاه تصفیه اخلاق بوده جایگاه آدم شدن بوده جایگاه تربیت بوده و با مساف باید بگم که قدم های اولا درست بر میدارن یعنی آدمی که به از خط خارجه یه وقت میره اونجا بالاخره یه چیزایی یاد میگیره اما آخر سر اون جایی که قرار آدم به کال زات خوب میگم کنیم می نه بساط بسات, بسات دیگره. میگه اصرار بازی در خانقاه نمیم، اونا در برابر خانقاه حافظ چی را علم می‌کنه دیر مخانوم؟ تقضیم بفرمایید که ایرانیان مسلمان عزیز شراففروشی و عرففروشی رو بسیار کار بعد و زشکی می‌کنست. این کار رو غیر مسلمانان باید انجام می‌دهد، اهم از مسیحیان، یهودیان و زردش اینا که در دینشون البته اینم بگم که در دین اونا چون این فار عیب نبود خب این ایرانیان مسلمان فقط میخریدن و میخوردن حفظ <تصحیح> کنم که تو داستان حجبابای اصفهانی نوشته که فرق مایونیاب با مردم اروپا است که مردم اروپا مشروبات الکلی رو علال می‌دونن و کم می ما حرام میدونیم زیاد. فقط، <تصفيق> ارز کنم که اینست که می‌کده، می‌کده باید دستی دست غیر مسلمان ادهده. باردم اسم یهودی و نصرانی خیلی مثل که چی؟ اینا دیگه خیلی خارجی از دین اصابه شدن و تمایل به اینا دیگه خیلی بردیگه این ها به بودن یعنی چیز این معلیت هستن اینه که بیشتر به مغان، مقت، به روحانی بین زردوش میگن و بعد اون پیر می کدر هم حافظ پیر مغان برای اینکه یه روحانیتی بعد می هم اصطلاح ارفانی است هم اینکه در حال عادی هم مصرف کردنه نه یه مقدار اون پرده ها و اون قیت ها یعنی اون سوپ کانسیان زمیر نبخود یه ذره از اون قیت ها آزاد میکنه بایده هم شخصیت هرگیری تو قیده میتنه نه وقتی چون دیگه سکولات کشتی صدا چون کشتیه بیده اینگر کش میشد و مجموع شد این اون وقت خواهی نیست ولی اولش که یه دوتا جامع زد و سرخوش شد یه مقداری چیزها رو میگه و شخصیت رو ظاهر. ارپانی هم که خب حالت جذبه الهی است که اونم به جای خود هر حال، تیری که مورد نظر آفظه تیر مهمه که همیشه اونو در مقابل پیر صوفیه در مقابل شیخ که مثل که قبرا بهتون گفتم که شیخ وقتی آفظ میگه مرادش اخون نیست یا توجه کنین که شیخ چه اون میگه مرادش مثلا شخصاد نیست و هیچ ارز کنم که شیخ به معنی پیر صوتیه هست و مقام دوبه می در یعنی سر اهرم قدرت ای پیر زیره است پیر نفر دوبه هم که اونکه متعدد بشه یک پیر داره یک سلسله با بعد زیره این پیر در هر خانقایی که در هر شهری و هر مرکزی هست یک پیر هست که اونجو دستگیری و سرفرست یک در مقابل اینا پیر مقانون حافظ میگه و بله توی اون چیز ما بیغماغن مست در از دست داده ایم هم از اشق و هم نفس جام باده ایم بر ما بسی کمان ملامت کشیدن تا کار خود ابروی جانان گوشاده ایم کار از تو میرود مددی ای دلیل را کنصاف میده ایم و ز راه چون لاله نیمه بین و قده میان کار این داغ بین که بر دل خونی نهاده این ای بول تو دوش داغ سبوهی کشیدی ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم بعد توی این، این بیت آسمانی رو واقعا داره که نظیر قدره خیلی کم حتی پیر دیوانم حافظ بیت به این قشنگی داره. میگه پیر مقان کیر مغنز توبه ما اگر نلوم شد کیر مغنز توبه ما اگر نلوم شد بود باقه ساختا که به عذر و گفتی که از این همه رنگ فیال چیست نقش غلط مبین که همان لوب ساده و در خانقه هم نگنجد بازی جام می مقانه هم با مقان تمنید جایی که رنگ ریا ویدون نداره و یکی از مسائل پیر حقیقی و مرشد حقیقی این است که این دکون رستگار رو نداشته خود این دکون رستگار داشتن خودش منافی اون اصلاح وارستگی قلندری رو است و مثلا فرض رو که در احوال شمس تبیزی باشده مولارا نوشتن که خودش رو تاجر نشون میاد. لا تو گشتم هیچی نداشت ولی لباس تاجره ها در میخوشد و تو کارون سرای توی کاروانسرهای اتافه ولی مثلا در شبان روز یا در هر دو شبان روزی از دکان رباسی رباسی همی کلبازی از وعس همی از دکان رباسی به دو تا فروشیا آب کلبازی یا آب نیه مخالی دوشتی کلبازی میگرفته مثلا هر شبان روزی یه قسمت گوازی ما ولی بیرون خود رو نگهر میدشه که پی به احوالش نبارن یکی از چیزا یکی از مسائلی میدید داشته این بوده که نفهمنین دارای مقامت و کرامت چیزایی برای اینکه اگه اگر این توجه مردمش خودش اصلا در سر بزنه بنابراین پیر واقعی و صوفی حقیقی کنهان از مردمه به توشیده در خواب غیرت حق او مرد خداست خداوند او رو از نظرها پنان میداره که پیده احوالش نبرن در هر حال میگه که در خانقه نگنجد اسرار اشقوازی جامعه می مقانه هم در مقام تمند درویش را باز همون مسقره کردن اونا هست درویش را نباشد نزل سراری سلطان نزل به معنی پیشکش و چیزی که میارن حدیه پیشکش از،, از همون نزوله یعنی یعنی در قدم اینا میانده اون چیزو پیشکناز میگه که سعدی این مورد اسدمانش خیلی خوب که بیت سعدی روشنه میگه سر سر میروم که در قدم اندازمش اشی زشتو درمانده هنوز که نوزمی محقر است به هنوز رو پیشکش ناچیزی این معنی نوزم در نصره قذبینی هست برگ سرای سلطان برگم به معنی مسلیبه و مال و اینجور چیزاست آدم فوی رو میگن مرد بی برگانوا مرد بی برگانوا را سبک از جای مگیر مرد بی و نوار و از جای مگی کوزه بی دسته چ دی به دو دستش بردار <تصفيق> دست یه وقتی کوزه دست دارن دستششون میگیرن ما یه دست. و وقتی دسته نداره بعد دو دستیده مرد بی و نووا مثل کوزه بی دسته می مرد بیبرگ و نوار رو از جای مگیر کوزه بی دسته چ دی بی به دو دسته پس برگ... یعنی همون مال و منال و بسند. اما بله ساز به معنی و لوازنه مثلا جنگیه وسایل برگ به معنی مال و دو نسخه اینجا این قضا رو در سه و هشت نسخه و از این هشت نسخه و پای نسخه دیاش در زن توجه رو که در نسخه خطی قدیم نقطه نمیذاشتن، کم میذاشتن گوافلان هم شبیه هم نوشته میشود، برد و نازل به اشتباه میشود در بیش نباشد، بیشتر نسخه چون نازل بوده نازل گذاشته، در بیش نباشد نزل سرهای سلطان خود چون میگه. میگه ما ایم رو کهنه دلقی کله، بله. اون چما در اختیار از اینکه خرقه هست حالا این خرقه ای کهانه هم خرقه بهتره اما این که میگه میشه آتیش زد محصولش اینه که ریا و اینا رو دون اندار مراد اینه نه اینکه چون این خرقه ارزش نداره میشه ما این کهانه درد ما همین یه درد کهانه داریم اینم میشه آتیش ایست هست برای اینکه اصباب ریا و اصباب سالوس و دردیش را نباشد موز به سلطان ما این کوهن دلگی که آتش دران تمام زد قصه ای آتش دادن به شد ده بار در دیوان آخزی تکمشد مکدر است که آتش به خرگه ها یا ببین که کرام می کند تماشا آتش زربوری ها خرمندین خواهد سوف ها بزین خرگه پشتونه بیندازو بریندن تو آتش گفت و خوش گفت، برو خرقه بسوزن، حافظ، یارب این قلب شناسی زکه آمود بود این خیلی هست، آرومان همشت کلگی نمیتونم بکنم یکی اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازم معمول این است که میگوین که این از مولای متخیانم این مطلب چی شده اینکه که خدایا من تو رو عبادت نمی کنم برای تمه بهش بیا برای ترس از جهنمت من تو رو عبادت برم، تو شایسته عبادتی و تو خدایی پروردگار من. من بنده ایتو هم، باید بندگی بکنم میگه اهل نظر دو عالم در یک نظر بباشم هم این برا هم برا، اون چه, چه برایشن مهمه رسیدنه به لغای حفته که باز در قرآن هست لوجوهان یا نازره در, خور... در روز قیامت میگه که که سفاقارن و خوبان اینا روی تر تازه است لوجوهان یا امایزه نازره الاربته ها نازره دار حق مشارعه از اهل نظر که میگه مرادش دید. اهل نظر دو آلم دو عالم دنیا آخر. در یک نظر برای دی... اون دیدار برای اون نظر همونی که موسا هم گفت که خداید به من نشون بده از هل پت و اصلا گفت لهم هر ترانی هرگز منو نخواهی ولی تجلی کرد در پوه و چه و چه که داستانشو گفتم اون نظر اهل نظر دو عالم در یک نظر دو بازد دعاو به منی نوبتی در کلمه دعاو طلب هست بازی نرد هم گاهی بازی ستاده می بازی می تو تامجیه که ببری که بازی گاهی بازی دو برگرده. یعنی شان بازی می کنید وسط بازی حس می کنید که جلوی یعنی دو به علامت هم می یعنی که اون کلی که شرط بستیم دشه دو برد. یا طرف درا میزنه بازی رو میشوران همون تو همون تو اول واسته میده صد دو تا همون دیگه تو یا قبول میکنه قبول بازی اعدام میکنه. اعدام میکنه دیگه می زیاد کنه بازی ادامه بده ادامه بده نمیکنه دیگه چهار نمتونید زیاد ولی اگه طرف احساس اون جلو افتاد میگه برگرد یعنی این دو برابر کردی حالا من دو برابر چه میذارم چهار بعد این یکی باز یا جا میزنه هم دو براون یا بازی قبول میزنه ادامه اگه دفعه سیفون هم دو علاقه زیاد میشه به تحقیل تصاوتی میره بالا دیگه دعا و اول همون نوبت میگه که در نرد عشق باختن همون نوبت اول نقدی که میزنن نیون جونه عشق هست و دعا و اول بر نقد جان طبع. میگه که دعال همو در یک نظر می میگه این بازی عشقه این نرد عشقه و در همون دعا و اول یعنی اونچه هم اول قرار میذارن با هم قبل از اینکه که دو بشه برگرد بشه اونا دعا و اول سر, سر نقد جان عشق هست دعا و اول بر نقد جان تمان زد کلمه دعا و طلب مثلا یعنی من مثلا فرض کنید که شاگرد میخوام برای این کلاس میگی من دعا و یعنی من رو در نوبت بذارید و اگر شایستیدیشتم اگر نوابتم رسید من رو صدا کنید اشخ هست دعاق اول اگر دولت وسالش خواهد دریگو شدن سرها بدیم تخیل بر آستان تمام زد چیز مشکلی نداریم یا اگر دولت وسال معشوق در یک چواه سبز بدیم یک نشونی بده این خیال آدم روزی به این دورت به سال میشه سر و بارها سرها رو میشه در آفتانه گیرمشه عشق و شباب و رندی مجموعه مراعب آدم عاشق باشه، جوونم باشه، رندم باشه رند رو مبل از حافظ، من آدم بی سرفا، البته داشتن عشقی ها و لحفا یه در ها مردم بیستر پارشو هم ره در حافظ حافظ معنی این لوقت عوض داده یعنی یه آدمی مثل خودشو میگره کسی که چیزی نداره خش زیر سر بر برطاره که هفت هفتر چیزی نداره ولی تمام سراخه رو سر کرده تمام دنیا رو دیده تمام اشخاص رو گشته، تمام مرامه رو مصبه کار نیزاه گرده، همه جا رخده و بالاخره آخرش این بارستگی اینو اختیار کنی اونوش که رند رند را با مسلحه از دینی یا هم این این هر کسی رندی نداره من نام رندم که ترک شاهدوست آخر کنم. محتسب دانت که من این کارها کمتر دم. یا میگه که فرصد شمر طریقه ی رنگی طریقه رندی رو چیز کن این بسه هر کسی نمیاد فرصت شمر طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست میگه این مثل راه گنجه راه گنج رو به همه روشن نیست اگه باشه که همه نفر اول میره برداریم این که همه میان دنبالش میرن و اعدام میدن بر این که نمیشه روش میگه رندی هم کنی مثل گنج. گنجی کنی عشق و شباب و با هم جمع میشه مجموعه مراده چون جمع شد معانی کنی بیان توان زد کی میتونه خوب حرف بزنی؟ چیزی که مطلب برای گفتن دستهیست این اولا یک وقتی معانی جمع شد مطالب برای گفتن داشتی اون وقت میتونه بیان یکی اما معانی و بیان دو تا از علوم عددی یکیش علم معانی است یکی علم بیان حالا شما وقتی که یه زبانی میخوان یاد میگیرین اولش نیاید و دستور اون زبان یاد میگید گرامر یاد بگیر. برای اینکه غلط حرف نزدید ولی خب اگه غلط حرف نزدین دیگه تمام شد تمام غرفت که حرف نزدین، اون وقت باید بی هم حرف بزن زیبا هم حرف یعنی، حرف خیلی ساته کلمه تمزیزی که این لطفی نداره که برمی که بشنه سا هفت که همین که از نظر دست بگید قلاف نیست که علم معانی، علم نیست که از عیبهای کلمه و کلام بحث میکنید. کلمه یه دونست، کلم مجموعه است. یه وقت بعضی کلماتی که عید کرد. مثلا فرض کنید که معنی دامع کسی معنی شو بله کنید. لغتی تبست بست. این خب دور آدم باید بره فرهان باز کنیم نیگه این چی. چلی زمین دلالان استعمال کنید؟ این معنی قریب داشتن این یکی از چیز. حروفش با همدیگه تنافر داشته، تلفظش سخت میشه خدا حفظ کنه استاد من، آقای روز سفارو ایشون معانی بیان که بس در سال تحصیل 19 به من برس میددن پرمودودا که کلمه هو خوه، تلفظ عربی هم بگیم هو خوه، تنافر این توقفزش تحقیم. سخ... گزه رو ندیارم این, کلم... این کلمات رو پارشونم. بشینگم تحقیم تحقیم رو بروید. کراهت در سنخ داشته بشین. به گوش خوش نیاد. اینا ایبای های کلمات. بعد ایبای کلام روی هم. تنافر کلمات داشته بشین. یعنی کلمات به دیگه خیلی خوب من تونه جور داشتیم. خوشتنه هم بیاد. به گوش خوش نیاد. کراحت در سمع داشته بشه تعقید لفظی داشته بشه هیچی دیگه لفظ داشته بشه یعنی شوید جوهش عوض شده بشه تلماتش به طوری که میخوام خوانید منش نفند یادمه با مثال زده بود پسند است با زهد امار و بوزرک ماد ماده محمود مرانصری را این اصلا تعقید معنوی داشته بشه یعنی معناش مشکل بشه این شعر صاحبی مثال زده بود استاد صفا میگه دل و ای داری چه میپرسیز و ارامم نگین را در فلاخن مینهد بیتابی نامم فلاخن چیز را پرت میکنه دیگه میگه انقدم من بیتابم که اسمم هم بیتاب شده اسم من اینکایر بیتاب شدی که اگر اون نگین بکنه این نگین هم بیتاب می فرد می شدید <تصفيق> <تصفيق> اونی بهش میکن ترلید محمدی چونی پیشیگی محمدی کنه آسوده ای داری چه می فرسید آرام هم. نگین را در خلاخان می نهد بیتابی نام هم. بحث کردن درباب این عیب ها و بحث کردن درباب کلام قسلیه این در حقیقت علم معانی چیز می بحث می از پساحت و بلاقت پساحت باستیش می شه شیبایی بلاقت باستیش می ولی این کلمه با بهمینی شیبایی یعنی حالی بودن کلام از دیگه های لحظی و مرحظی رسائی یعنی ایراد کلام به محفظای حال و فسی اون از که عیب نداشته بوشی ولی ممکنه یه سوخن عیب نداشته بوشی اما با راستا به اون مایلس نداشته اگر که یه عالم درجی یک نشتر باشندر یه مایلسی بن وقتی خط حرکت حرف بزنه بیاد مثل کلاس درس هي کنه یه مطلبی رو صد بار بگه خب این باعث با اینکه درست فصیح هست خینم خوبه عمل می‌زنه ولی این به درد اونا نمی‌خوره به اونا بد یه اشاره می‌کنه به بعد اگر مثلا یه جور لازمی کلام مفصل کوتاه بود این اوطری بود کلام فصیح یعنی خالی روش از این پای لغوی من علی قرار یعنی بعض مجلس دانشش بشه بدونه که شهرنده چی میخواد اگه مختصر میخواد مختصر بگه اگه مفصل میخواد مفصل بگه اگه آسان میخواد آسون بگه اگه شوخی لازم شوخی بکنه اگه بچگانه بود حرف زنه بچگانه حرف بزنه مجلس دانشش بدونه چه دیگه اینو میگن پلی. علم معانی درباره فساحت و بلاغت هست علم بیان ببخش بعضی دوست علم بیان باشه ابو مزار نمیخوام یعنی که طالب دیدار هست